مصنوی معنوی مولوی برنامه پینجاه و جمع آمدن ساهران از مداین پیش فرعون و تشریف ها یافتن و دست برسین زدن در قهر خسم او که این بر ما تا به فرعان آمدند آن ساهران، دادشان تشریف های بسگران وعده کرد و پیشین هم بداد بندگان وسبان و نقد و جنس و زاد بعد از آن می گفت هین ای سابقان گرفزون آید اندر امتحان برفشانم بر شما چندان عطا که بدرد پردهی جود و سخا پس به گفتندش به اقبال تو شاه غالبایی و شود کارش تباه ما در این فن صفدری و پهلوان کس ندارد پای ما اندر جهان ذکر موسا بند خاطرها شده است کین این حکایت هاست که پیشین بود است ذکر موسا بهر رو پوش است لیک نور موسا نقد توست ای مرد نیک موسی و فرعون در هستی توست باید این دو خسم را در خیش جست تا قیامت هست از موسان تاج نور دیگر نیست دیگر شد سراج این سفال و این پلیته دیگر است لیک نورش نیست دیگر زانسر است گر نظر در شیشه داری گم شوی، زن که از شیشه است اعداد دویی بر نظر بر نور داری وارهی از دویی و اعداد جسم منتحی از نظرگاه است ای مغز وجود اختلاف مؤمن و گبر و جهود اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل پیل اندر خانه تاریک بود، ارزه را آورده بودندش هنود. از برای دیدنش مردم بسه، آن ظلمت همی شد هر کسه. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندران تاریکیش کف می بسود. آن یکی را کف بخورتوم افتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن برو چون باد بیزن شد پدید. آن یکی را کف و بر پایش بسود، گفت شکل پیل دیدم چون عمود. آن یکی بر پشت او بنهاد دست، گفت خود این پیل چون تخته بوده است. همچنین هر یک به جزبه که رسید، فهم آن می کرد، هر جا می شنید. از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب داد، این علف. در کف هر کس اگر شمعه بوده، اختلاف از گفتشان بیرون شده چشم حس همچون کف دست است و بس نیست کف را بر همه او دست راست چشم دریا دیگر است و کف دگر، کف بهل و از دیدای دریا نگر. جنبش کف‌ها ز دریا روز و شب کف همی بینی و دریا نه عجب ما چو کشتی ها به هم برمی زنیم تیره چشمیم و در آب روشنیم ای تو در کشتی تن رفته به خواب آب را دیدی نگر در آب آب آب را آبیست کو روح را روح را روحیست کومی موسی و ایسی کجا بود کافتاب کشت موجودات را میداد آب آدم و هوا کجا بود آن زمان که خدا افگند این زه در کمان این سخن هم ناقص است و ابتر است آن سخن که نیست ناقص آن سر است گر بگوید زان بلغزد پای تو ور نگوید هیچ از ای وای تو، ور بگوید در مثال صورتی، بر همان صورت به چسبی عیفتی، بست پایی چون گیا در زمین، سر به باد ببادی یقین لیک پایت نیست تا نقل کنی، یا مگر پا را از این گل بر کنی چون کنی پارا حیاتت زینگل است این حیاتت را روش بس مشکل است چون حیات از حق بگیری ای روی پس شوی مستغنی از گل میروی بسته شیر زمینی چون حبوب جو فتا مخیش از قوت القلوب حرف حکمت خور که شد نور ستیر ای تو نور به را ناپذیر تا پذیرا گردی ای جان نور را تا ببینی به حجب مستور را چون ستاره سیر برگردون کنی بلکه بیگردون سفر بی چون کنی آنچنان که نیست در هست آمدی این بگو چون آمدی مست آمدی راههای آمدن یادت نماند لیک رمزی بر تو برخواهیم خاند هوش را بگذار و آنگه هوش دار گوش را بربند و آنگه گوش دار نه نگویم زان که خامی تو هنوز در بهاری تو ندیدستی تموز این جهان همچون درخت است ای کرام ما بر او چون میوه‌های نیم خام سخت گیرد خام‌ها مرشاخ را زان که در خامی نشاید کاخ را چون بپخت و گشت شیرین لبگزان سست گیرد شاخ ها را بعد از آن. چون از آن اقبال شیرین شد دهان، سرد شد بر آدمی ملک جهان. سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. چیز دیگر ماند اما گفتنش، با تو رو هلقاتس گوید بی منش. نه تو گویی هم گوش خیشتن، نه من و نه غیر من، ای هم تو من. همچون وقتی که خواب اندر روی، توز پیش خود پیش خود شوی. بشنوی از خیش و پنداری فلان، با تو اندر خواب گفتستان نهان. تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق بلکه گردونی و دریاوی عمیق آن تو ازفتت که آن نه تو است قلزم است و غرقگاه ست تو است خود چه جایی حد بیداریست و خواب دم مزن والله الله و عالم به سبا دم مزن تا بشنوی از دمزنان، آنچه چه نامد در زبان و در بیان. دم مزن تا بشنوی زان و آفتاب، آن چه نامد در کتاب و در خطاب. دم مزن تا دمزند بهرت تو روح، آشنا بگذار در کشتی نو. کن آن کاش کرد او که نخواهم کشتی نوه هدو هی hey بیا در کشتی بابا نشین تا نگردی غرق توفان مهین. گفت نه nee, من آشنا آموختم من بجز شمع تو شمع افروختم. هین مکن کین موج، توفان بلاست دست پا و آشنا امروز لاست باد قهر است و بلای شمع کش جسک که شمع حق نمی پاید خموش گفت نی رفتم بران کوه بلند آسم است آن کوه مرا از هر گزند هین مکن که کوه کاه هست این زمان، جز حبیب خیش را ندهد امان. گفت من کی پند تو بشنودم که تمعه کردی که من زین دودم. خوش نیامد گفته تو هرگز مرا، من بریم از تو در هر دو سرا. هین مکن با که روز ناز نیست، مر خدا را خیشی و، انباز نیست تا کنون کردی و این دم نازک است اندر این درگاه گیرا ناز کیست لم یلد لم یولد است و از قدم نه پدر دارد نه فرزند و نعم ناز فرزندان کجا خواهد کشید ناز بابایان کجا خواهد شنید نیستم مولود پیرا کم بناز نیستم والد جوانا کم گراز نیستم شوهر نیَم من شهوتی ناز را بگذار اینجا ای ستی جز خضوع و بندگی و اضطرار اندر این حضرت ندارد اعتبار گفت بابا سالها این گفته ای. باز میگویی جهل شفتهی. چند از اینها گفتی ای با هر کسی، تا جواب سرد بشنودی بسه این دم سرد تو در گوشم نرفت، خواست اکنون که شدم دانا و زفت. گفت بابا چه زیان دارد اگر بشنوی یک بار تو پند پدر. همچنین می گفت او پند لطیف، همچنان می گفت او دفع عنیف. نه پدر از نصح کنعان سیر شد، نه دم در گوش آن ادبیر شد. اندر این گفتن بودند و موج تیز بر سر کنعان زد و شد ریز ریز. نو گفته‌ی پادشاه برده بار مرمرا خر مرد و سیلت برد بار وعده کردی مرمرا تو بارها که بیابد اهلت از طوفان رها دل نهادم بر امیدت من سلیم پس چرا بربود سیل از من گلیم گفت او از اهل و خیشانت نبود، خود ندیدی، تو سپیدی او کبود، چون که دندان تو کرمش در فتاد، نیست دندان، برکنش ای او استاد، تا که باقی تن نگردد زار از او، گرچه بودان تو شو بیزار از او، گفت بیزارم ز غیر ذات تو، غیر نبود آن که او شد مات تو، تو همه همیدانی که چونم با تو من، بیست چندانم که با باران چمن. زنده است و شاد است و آیله، مقتضی بی باسته و بی حایله. متصل نه. منفصل نه ای کمال، بلکه بیچون و چگونه و اعتدال. ماهیانی ما تو دریای حیات، زنده ایم از لطفت اینی کسفات. تو نگنجی در کنار فکرته، نیب معلولی قرین چون علته. پیش از این طوفان و بعد این مرا تو مخاطب بوده ای. در ماجرا با تو می گفتم نبا ایشان سخن ای سخن بخش نه آن کهن نه که عاشق روز و شب گوید سخن گاه با اطلال و گاه با دمن روی با اطلال کرده ظاهرا او کرا میگوید آن مدهد کرا شاکر طوفان را کنون بگماشتی، واسته اطلال را برداشتی، زانکه اطلال لعیم و بد بدند، نه ندای، نه صدای میزدند. من چنان اطلال خواهم در خطاب، که از صدا چون کوه واگوید جواب، تا مصنا بشنوم من، نام تو عاشقم بر نام جان تو هر نبی زان دوست دارد کوه را تا مصنا بشنود نام تو را آن کوه پست مثال سنگ لاخ موش را شاید نما را در مناخ من بگویم او نگردد یار من بی صدا ماند دم گفتار من با زمینان به که هموارش کنی نیست همدم با قدم یارش کنی گفت ای نوح ار تو خواهی جمله را حشر گردانم برارم از سرا بهر کنعانی دل تو نشکنم لیک از احوال آگاه می کنم گفت نه نه راضیم که تو مرا هم کنی غرقه اگر باید تو را هر زمانم غرقه می کن من خوشم حکم تو جان است چون جان می کشم ننگرم کس را وگر هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم عاشق سنع تو هم در شکر و صبر عاشق مصنوع کی باشم چو گبر، عاشق سنع خدا با فر بود عاشق مصنوع او کافر بود توفیق میان این دو حدیث که ار رزا بالکفر کفرن و حدیث دیگر منلم یرزه به قضایی فلیطلب ربن سوایی دی سؤال کرد سائل مرمرا زان که آشق بود او بر ماجرا. گفت نکته ار رضا بل کفر کفر، این گفت و گفته اوست ماهر. باز فرمود او که اندر هر قضا، مر را رضا باید، رزا. نه قضای حق بود کفر و نفاق، گر بدین رازی شوم باشد شقاق، ورنی امرازی بود آن هم زیان، پس چه چاره باشدم اندر میان؟ گفتمش این کفر مقضی نه قذاست؟ هست آثار قضا این کفر راست. پس قضا را خواج از مقضی بدان، تا شکالت دفع گردد در زمان، راضیم در کفر زان رو که است، نه از این رو که نزا و خبس ماست. کفر از روی قضا هم کفر نیست. حق را کافر مخون اینجا مایست. کفر جهلست و قضای کفر علم. هر دو که یک باشد آخر حلم و خلم زشتی خط زشتی نقاش نیست بلکه از وی زشت را بنموده نیست قوت نقاش باشد آنکه او هم تواند زشت کردن هم نکو گشایم بحث این را من بساز، ساز، تا سؤال و تا جواب آید دراز ذوق نکته عشق از من می رود. نقش خدمت نقش دیگر می شود. مثل در بیان آنکه حیرت مانع بحث و فکرت است. آن یکی مرد دومو آمد شتاب، پیش یک آیندار مستتاب گفت از ریشم سپیدی کن جدا، که عروس نو گزیدم ای فتا. ریش او ببرید کل پیشش نهاد، گفت تو بگزین مرا کار فتا. این سؤالو آن جواب استهی گزین که سر اینها ندارد درد دین آن یکی زد سیلی مرزاید را حمله کردو هم برای کید را گفت سیلی زن سؤالت میکنم پس جوابم گوی آنگه میزنم بر قفای تو زدم آمد تراق نی سؤالی دارم اینجا در وفاق این تراق از دست من بوده است یا از قفاگاه تو ای فخر کیا گفت از درد این فراغت نیستم که در این فکر و تفکر بیستم تو که بدردی همه اندیش این نیست صاحب درد را این فکر هین در صحابه کم بوده حافظ کسی، گرچه شاقه بود جانشان را بسه، زانکه که چون مغزش در آگند و رسید، پوست ها شد بس رقیق و واکفید، قشر جوز و فستق و بادام هم، مغز چون آگندشان شد پوست کم مغز علم افزود کم شد پوستش زان که آشق را بسوزد دوستش وصف مطلوبی چو ضد طالبیست وحی و برق نور سوزنده نبیست چون تجلی کرد اوصاف قدیم، پس بسوزد وصف حادث را گلیم. ربع قرآن هر که را محفوظ بود، جلفینا فینا از صحابه میشنود جمع صورت با چنین معنی جرف، نیست ممکن جز ز سلطان شگرف. در چونین مستی مراعات ادب خود نباشد ور بود باشد عجب اندر استغنا مراعات نیاز جمع زدین است چون گرد و دراز خود آسا معشوق امیان می بود کور خود صندوق قرآن می بود. گفت کوران خود سنادی قند پر از حروف مصحف و ذکر و نزر. باز صندوق پر از قرآن بهست، زن که صندوق بود خالی بده است، باز صندوقی که خالی شد زبار بهز صندوقی که پرموش است و مار حاصلا در وصل چون افتاد مرد گشت درلاله با پیش مرد سرد چون به مطلوبت رسیدی ای ملی، شد طلبگاری علم اکنون قبیه چون شدی بر بام های آسمان سرد باشد جستجوی نردبان جز برای یاری و تعلیم غیر سرد باشد راه خیر از بعد خیر آینه روشن که شد صاف و جلی جهل باشد بر نهادن سیقلی پیش سلطان خوش نشسته در قبول زشت باشد جستن نام و رسول برنامه های مصنوی معنوی مولوی را میکتاش و شهر باز ایرج، تهیه و اجرا کردن.